رسول الله علیه و سلم مسلمان های محترم دوستای عزیز اسلام حقیقی را وقتی درک میکنیم که غبار بدعت و نواوری های منفی و غلطی که آینه صفای اسلام قرار گرفته به این خاطر به ادامه او درس گذشته ما باز هم درس بدعت شناسی را خدمتان تقدیم میکنیم. خلاصه درس گذشته ما ای بود که ما به خاطر شناخت بدعت در دست گذشتشته گفتیم که بدعت یکی در لغت است که بد لغوی میشه که بدات حسن هم بگوییم یکی بدات یا نوورری وسایل بود که ما میدانستیم در وسایل زندگی خود، چی کنیم؟ نوآوری بکنیم مثلا سابق آجی حیوانات می و سایبا بلک بورد، آلو پیلن توسط وایت بورد یا توسط پروژکتور توسط کامپیوتر در ساد آده میشه و این یک نوآوری مثبت از دیدگاه دین مقدس اسلام است در دومیش گفته بودیم که بدعه و نواوری دیگی که بود در سیستم زندگی است مثلا در سابق مردم زندگی معمولی داشتن عالمه میشه که در زندگی خود انسان نوآوری بکنه مثلا در خانه چند منزله زندگی بکنند در از وسایل خوب و لوکس مثلا به وجهی که لباس کت دز شش تا شلوار لباس توسط ماشین و همه چیز این بدعت یا نوآوری در سیستم تو زندگی و سوم قسم گفتیم که نوآوری در زنده ساختن یک سنت مسکی گفتیم بعضی از سنت ها هست که امروز در جهان فراموش شده این سنت ها سنت نامگذاری سنت عقیقه مثلا این بعض سنت عقیقه بدعت دعات آمده یک کس دوباره این سنت عقیقه را که مثلا دو گسفند برای یک پسرک و یک گسفند در دختر باید زبح شود این سنت را اگر کس زنده می, می کنن ایره همه که یک نوه نوآوری کرده در زنده ساختان سنت ها که یا در جمله سنت های های حسنه یا نواری های حسنه هستن که صرف در لغت به مفهوم هستن قسم دو می که بدعت های اصطلاحی هستن که این بدعت های اصطلاحی غالباً نوآوری در دین است. بدعت اسطلاحی ما مطلقا که در شریعت اسلامی میگن که چیز نبیرد در دین داخل کردن این بدعت میگن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته که کل بدعت دلال هر نواوری در دین ای گمراهی است ای بدعت‌ها را او حساب گرفتیم که اول در جمله بدعت‌های اصطلاحی اختراعی یک عقیده جدید است مثل که مسیحیا کسب نام پاول یا شاول ترتوسی بعد از حضرت مسیح علی السلام ای ظهور کرد و ای که یهودی متأسف بود که عقیده پسر خدا و عقیده صلیب مسیح و عقیده سه خدایی را اختراع کرد و ای در جمله بدعت های بسیار خطرناک است در جمعه بدعت های عقیدتی همچنان گفتیم بدعت واسطه گرفتن به خداوند چون خداوند ذات سمد است و سمدیت خداوند متال جل جل جل میکنه که انسان نباید به خداوند واسطه بگیره و این خداوند نباید مثل پادشاه های دیگیه. فکر کنیم که دیگه پادشاه ها ضرورت به رئیس دفتر دارن ضرورت به سکرتر دارن ضرورت به وزیر دارن و وقتی که ما میخوایم پیش از اون پاچه ها بریم از طریق از اونا باید بریم کسی که خدا را مثل دیگه پاچه ها فکر میکنه مشکل عقیده برش پیدا میشه و خداوند ذات سمد و بینیاز از این واسطه ها از گرفتن سکرتر رو، از گرفتن اه، اه، کسی که مثل وزیر یا نماینده و سفیر از باشه، وقتی یک بنده خداوند عبادت میکنن خداوند مطال میگه اذا سألک عبادی عنی و اینی قریب اگر بندهای های ما در مورد من صحبت میکنن یا سوال میکنن از تو ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ای مسلمان یا ای تو کسی که قرآن عزیم شوان رو مطالع میکنی فا اینی قریب ما و بنده خود بسیار نزدیک هستن بنابراین علما در اسلام نقش واسطه رو بازی نمیکنن علما مثل علماهای دیگر بخش هاست عالم بیولوژی علم بیولوژی را تشریح میکنند عالم ساینس ساینس را تشریح میکنند عالم اینجینری اینجینری را تشریح میکنند عالم شریعت شریعت و دین خدا را صرف توضیح و تشریح میکنند اما بین خدا و بین بنده این بی واسطه قرار گرفتن نمیداند به خاطر از اینکه ما نمی که تو به خدا نزی هستی یا من میشه که یک انسان بسیار ضعیف و یک انسان بسیار معتوان و بیچاره پیش خداوند مقام و منزلتش از یک عالم بسیار بزرگ کرده بیشتر و زیادتر باشه بدعت دیگه بدعت استعانت یا کمک خواستن از غیر خدا در قرآن از مشان ما شما میخوایم که ایاک نعبد و ایاک نستعین خدایا خاص را عبادت میکنیم و خاص از تو کمک میگیم بنا ان بگیم که در هر مشکل خود چرا خدایا یا الله یا الله پولس ترتوسی امو پولس یا شاول ترتوسی مردم گفت که شما به عوض یا الله یا مسیح بگوین یا عیسی بگوین یا مریم بگوین اینا را به عوض نام خدا نام مخلوق ها. درست است حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر خداست حضرت بی, بی مریم شخصیت بسیار بزرگوار در تاریخ اسلام تیر شده کرامت بسیار بزرگ داشت که میوه های تابستان در زمستان درش راورده میشد میوه‌های های زمستانی در تابستان در خدمتش تقدیم میشد ولی حق نداریم که از بیبی بی مریم کمک بخوایم یا حق نداریم حضرت از عیسی مسیح کمک بخوایم به مشکل ما حق نداریم که از حضرت محمد صلی الله علیه و کمک بخوایم چرا ما میگیم که ایاکه خاص ترا پروردگار نستعین کمک میجوییم به مشکل بدعت عقیدتی دیگر بدعت مقدس درخت هاست در اسلام درخت مقدس وجود ندارد و قصه ذات انوات یک درخت بود که مشرکین او درخت مقدس قرار می میرفتن رفتن از زیر ریشه های از و از شاههای درختی ازو و ازو کمک و از او, کومک و او را یک سلسله بعضی از خوتیات ها را بر رزقائل بودند بعضی از اشخاصی که مسلمان شده بودن ولی ایمان در قلب ازنا درست جایی نگرفته بود یا ایمان درست نمیفامیدن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که بر ما هم مثل ذات انواد ازنا یک ذات انواد تهین که در که ما هم امی مراسمی که پرستا دارن ما هم مشابه زو در اسلام داشته باشیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم برشان گفت که ایگه غلط است شما اونمون تا قاضاهای منفیر که بلی اسرائیل از حضرت موسی می کردن شما هم می که شبرن شبرن یا شبرن به شبرن بلست ببلست بلست با اونا خودا نزدیک می سازین. در اسلام ولقد کرمنا و نیادم گفته شده خ... اه... کرامت انسان داره وقتی که تو باید درخت بری پناب جویی و یا سر سجده و با درخت پایین بکنی در حقیقت کرامت خدا از دست دادی به راهم کرامت درخت پیدا کرد نه تو از ای خاطر در دین مقدس اسلام حتی روایات است که در زیر درختی که بیعت الردوان صورت گرفته بود او درخت هم بعضی فکر می کردن که به خدا این درخت مقدس است که یک پیمان مقدس در زیر اجرا شده، لاکن صحابه مبارک این درخت با تبر توته توته کردن در اونسو انداختن که این قدسیت حاصل نکنند. و حضرت ابن سیرین میگه که از یک جای تیر میشدیم بعضی مردم میگفتن که ای اونو مسجد نشان بدن میگفتن ای این است که اونمون درخت در اینجا بود یک کس میگه از صحابه گفت که ما یک سال با اون درخت ها نمشناختم شما آمدین چهل سال یا جایی زوره میفهمین معلوم میشه که صحابه کرام به اون درخت ارزش قائل نبودن چرا؟ قدسیت در اسلام صرف به ذات زل جلال نبا کسی بگیم بدعت لنگر نمودن زیارت ها امروز ای بدعت در بین مسلمان ها رواش پیدا کردن در قبرستان ها و در مرقد های بعض شخصیت های ساله تندور جور میکنن نان پختم میکنن دید پختم میکنن به لنگر لنگرها ای اصل در اسلام ندارد. اسلام الیوم اکمل لکم دینکم در ای روز تکمیل شدن بناهن هر پدیده جدیده در فایل های اسلامی مخالف الیوم اكملت لکم دینکم میشن کمال دینه مورد سوال قرار میده و حتی کسانی که از دین بی‌خبر هستند با دیدن این خرافات از دین مقدس اسلام متنفر میشن ما مابنام لنگر گرم کردن و شخص در دین مقدس اسلام در عقیده اسلامی نداریم بدعت بوسیدن دروازه دیوارها و قلف دو... بعض از زیارت ها این هم جزء عقیده بعضی از کسایی شده که از خدا پناه می و برای اوتو انسان ها از خدا هدایت می برادر قلفی که در زیارت است او قلف چنایی است هیچ قدسیت ندارد. دروازه که هست او دروازه چوبی است یا دیوار دیوار چوبی دیوار گِل و است حضرت عمر رضی الله تعالی در مقابل حجر الاساد سات شد با اونم ایمان قوی که از دانشگاه رسالت یاد گرفته بود حضرت عمر برای مردم برای خطاب به حجر الاساد گفت که ای سنگ سیاه من می فهمم که تو هیچ نفر زراره به من را سانده نمیتونی. تو یک سنگ سیاستی تو هیچ چیز کرده نمیتونی قسم به خداست که اگر رسول خدا تو را بوسه نمیکرد من هرگز تو را بوسه نمیکردم ولی از تو سنگ جنت هستی و پیغمبر خدا به خاطر که تو از دنیا آمدی تو یک بوسه کرده من به خاطر تو یک بوسه میکنم. اما به یقیده که تو هیچ نب و هیچ ضرر به کس رسانده نمیتونی بدعت خوردن خاک قبرها ببینین چقدر انسانها ضعیف میشن بلاخره میرن نام خورده خاک قبرستان میخورن ای در دین نیست از زد دین است این مردم علاقمند دی دین نمیسازن مردم از دین متنفر میسازن خاک در اونجا با یک سلسله از میکروب ها و ویروس های مادی مختلط است در پانویزی این خاک با ویروس های عقیدتی نیست مختلط است که نباید با خوردن اتخاب ها هم جسم خوده و هم عقیده خوده زاد بدعت زبح کردن حیوانات برای اشخاص صالح باشه و یا طالح زبح حیوان و قربانی کردن صرف ذات خداوند متعال جل جلاله است اگر کسی حیوان را به شخصی و به زیارت و یا به مرقد میبرد در حقیقت مشابهت پیدا کرده با اونمو بت پرستایی که برای بدهای خود قربانی میکرد در دین مقدس اسلام به هیچ شخصی ولو پیغمبر باشه زبح کردن حیوان جایز نیست بدعت اسپند کردن اسپند دود کردن این بدعت است که در مسیحیت وجود دارد و غالبا کشیشای مسیحی با اونمو قوطیی که اسپند خود در کلیسا میره شما هیچ وقت ما رو نیدین که با قوطی اسپند آمده باشیم در مسجد اه؟ خداوند ما را از این گپا نجات بده پس وقتی که این کار نیست پس اسبندود کردن و وقتی کسی ببینن وقتی انسان در جنازه میره، جنازه میخوانه، به اندازه کوی احاد برای از او داده میشه و وقتی که در قبرستان او دفن دپن میکنه، به اندازه کوی در دروش راک میکنه، برای از او داده میشه اینال پس که او میعهد، قبرستان جای کسیف بود کی رفته بود و رسپند بکنیم که پس پاک شو. عقیده است مخالف عقیده اسلامی اسپند در اسلام نیست و اسپندودها کسانی هستند که جوانای آتل و باطلی که هیچ پیشه و وظیفه ندارن بار دوش جامعه هستند می از این طریق منفی بر خود کسب معاش بکنند و نباید ما مسلمانها به این خرافات خدا مبتلا بکنیم بدعت مقدس شمردن بعضی از مهره ها بسیاری زن عادت دارن که بعضی از مهره ها را در سر باربند تفلای خود بند میکنن و میگن این نظربند است و اگر نظربند میبود نامش موره نمیبود این موره و موره پرستی عادات قدیمی بود که در بعضی از کشورهای ما قبل اسلام این ها وجود داشت نباید خدا مثل که دکتور علی شریعتی میگه, میگه انسانها هم واره از توتم گرفته از موره گرد و قرمز رنگ و خوش رنگ گرفته با اسم فتیشیزم از روح جدش گرفته به اسم امیمیزم از اشیای طبیعی گرفته از ستاره ها گرفته و از بعض درختها گرفته از رب گرفته از یک تکه سنگ گرفته همه اینها را می و مجسمه می ساخته و پرستش می و تمام مدت عمر را در راه آنها فداکاری می بلکه خون خودش را به سادگی می دادن. در کتاب بینیو ایدئولوژی تعلیف دکتور علی شریعتی صفحه چاپخانه هیدری ایران صفحه 44 و 45. این اعتقادات مهره و این اعتقادات موره های قرمز رنگ و خوشرنگ رنگ این اعتقادات است که در اسلام نیست اسلام عزیز را باید از این کسافات دور ساخت بدعت نظر کشمش خود این بدعت هم در بین مسلمان رواج پیدا کردن کشمش خودا جمع میکنن و یک تعداد از انسان کشمش خور به خاطر که بر خود را پیدا کنند از این استفاده میکنن و برای بدعت مشکل کشا و فلانی از این استفاده میکنن مشکل کشا و حاجت روادر دین مقدس اسلام صرف ذات الله جل جلاله است هیچ کس که مشکل هیچ کسی را حل بکنه جز خدا ایاکن عبدو و ایاکن استعیم آه بر کسانی که در نماز خود ایاکن عبدو و ایاکن استعیم میگن و خارج از نماز ضد ای تعهد خود با خدا اعماد را انجام میتن بدعت گذاشتن موی اتفال برای نصر این بدعت دیگه موی یکاشتو که ببینه که دراست یک متر ماندن و اشتکایی دیگه او را کش بکنه این موی زیره من نظر ماندهم که باز هر وقتی که کشتم باز این موی زیره قطع میکنم در کدام کتاب و کدام حدی استال و شعل هو اماما سفون. همین شکلی که قبل از اسلام بعضی از پیروان حضرت ابراهیم علیه سلام و شیطان گمراه کرد و برشان گفت که با لباس تواف نکنین که لباسهایتان چرکوچتل است اینا را لوچ ساخت درمی شکل که شیطان حضرت آدم و حوارا لغزاند و بالاخره اونا از لباس افت که خداوند بر از پوشانده بود محروم ساخت باز هم شیطان ها می یا ام سی و که ماره از این لباس پاک و صاف عقیده دور بسازند پس نباید یک مسلمان به این غبارها اعتقاد کنم. از اخترای اعتقادات مییم هم دوم دوم اخترای عبادت جدید بعضی از عبادت ها شامل اسلام شدن و بعضی از فرهنگ پرست نه خدا ما در کشور خود هم فرهنگ پرستا داریم که در آروسی و مورده خود جز از کلمه رواج و کلمه فرهنگ کلمه خدا در زبانشان نیست این فرهنگ پرستا یک سلسله از عادتهای فرهنگی و رواج ها را باورده و جزء عقیده اسلامی کردند که دین مقدس اسلام از ای اعتقادات کاملا بری می باشه و از ای عبادتها مثال بدعت الهاک خاندن امروز وقتی کسی وفات میکنه بعضی از بدعت کارها و داییان بدعت قاسه از علوه گذاشته و ملاصه به مسجد مجبور میسازن که انگشت خود را در داخل علوه کنه و در همین لحظه علحاق بخونه من هم یک وقت شاگرد مدرسه بودم من را در یک خانه و گفتن علاق بخونم من فهمیدم که علاق چه قسم بخونم خب بالاخره گفت تو چه قسم جاهد هستی ال و تکاس رو رو خب گفتم میخوانم خواندم الهاک تکاص رو گفتنی کل که تا داخل کده الای دا باور دا. بکنین وقت من او جوان هم بودم کلکی بام نرمازظم یه س دوا وقتی که چخ کردم تا آخر عزی کل که, که من سوخته میرفت و من الهاک خواند می رفتتم برای رفتن و دوزخ زخ میکردم که خدا تو زخم ببارید که مها دوزخ دو زخ داخل کردیم که تازیب ادکارایی در کدام کتابو، و در کدام سنتو در کدام حدیثو، کدام صحابی مبارکی کار کردن چرا دین اسلام به یه اندازه به نظر مردم زشت معرفی میکنیم باز چند روز یک انسان غریب و فقیر مجبور میسازن که بر یک عالم که مثل ما واره که از شش جای ماش دارن پیداگری های زیاد داره باز برازو روز نان میبرن و او هم با استفاده جویی خود از این نان ناروا چهل روز شکم خود مبتلا به گناه کنند هر دو طرف در کار خدا گرفتار و فقیر بیچاره ای که فوت کرده و یتیم دار است او مجبور است چهل روز به خانه یک سرمایه‌دار به نام دین مقدس اسلام رıza ببرد انتهای جدید پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مسلمان ها گفت که پیش قبلا در جاهلیت ایده زیادی وجود داشت به نام مهرجان و نیروز و نوروز و ایگب ها خداوند متعال جل, جل بر برای مسلمان ها دو عید تعیین کرده که در ای روز عبادت مقدس دانستن ای روز ها این دارد در دا این روز روزه گرفتن نوروا هست عید قربان و عید رمضان عید دیگه در اسلام وجود نداره اگر کس روز دیگی را تجلیل میکنه به نام عید در حقیقت خود گناهگار میسازند مینا ما عید دیگیه که به روز ما عبادت بکنیم در اسلام وجود نداره از فرهنگ های قدیم بعضی از روزهای باقی مانده که در اون روز بعضی از اعمال فرهنگی و رواج ها صورت میگیرند نسبت دادن این روزها به دین مقدس اسلام، نوآوری و تجدید و اضافه کردن چیزهای جدید در دین مقدس اسلام است که باید از این جدا پرهیز کنیم. بدعت روزهای مخصوص. ما در دین مقدس اسلام روزهای مشخصی داریم که روز مثلا آشورا و در روز آشورا عبادتی مخصوص که روزه گرفتن در روز دهم ده آشورا که سنت رسول کریم صلی الله علیه و سلم است و به خاطر مخالفت با یهودیان چون روز آشورا روزی است که خداوند حضرت موسی علیه السلام از ظلم فرعون نجات داد و فرعون و فرعون صفات ها و فرعونی ها و لشکرش غرب کرد حتی یهودا ایروز مقدس اساب میکردند و اونا هم روزه میگرفتند پیغمبر صلی الله علیه و وسلم گفت که شما روز تاسوعا یعنی روز نهم محرم هم روزه بگیرین به خاطر مخالفت با یهود و مطابقت و مطابقت از بیخوشی نجات حضرت موسی علیه السلام و سنت پیغمبر صلی الله علیه و وسلم در روز نهم محرم و دهم ده محرم مسلمان ها روزه نفلی میگیرن بعضی از روزهای دیگه که مثل روز دوی مرده روز سه شب جمهگی روز چل این روزها در اسلام هیچ قدسیت ندارن این بدعت است که بعضی از بدعتکار کارا این داخل دین کردن که ما اصل بر از چیزها در شریعت نیافتیم از این خاطر این روز دو روز سه مرده و خصوصا خوردن نان در این روزها و شکم خودت تحمیل کردن بالا یک مسکین بیچاره که هم پدرش مرد هم باید سی نفر شکم پرستنان بتر. به است که مردم از دین اسلام متنفر می سازن. تو تعذیت میگی و یا میخوای که شکم پوری بکنی. اگر تعذیت میکنی تو برو از خانه خود غذا بربر مرده دار. از این خاطر روز دو روز احتیاط کردن لازم است. در اسلام شب جمهگی کدام جای من؟ دیدیم که عبادت خاصی داشته باشند. و یا هم این که مثلا روز چلو سالگره و ایگفه ها این کلش که شکم پرستا به خاطر پر شکم‌های خود و تحمیل شکم خود بالای مسکین های دیگر این دی به را اختراع کردن و دین مقدس اسلام از این به پاک است بدعت سمنک در هیچ جای سمنک در دین مقدس اسلام وجود ندارد. هیچ صحابی و هیچ زن صحابی و هیچ مرد صحابی و هیچگاه پیغمبر خدا و در خانه پیغمبر سمنک بختنه شدن فرهنگ سمنک فرهنگی که در کشورهای آذربایجان و افغانستان و ایران و این منطقه ها رواج دارد. ای داخل کردن در دین اسلام و نسبت دادن به بعض کسها وزنهای بدعت کاری که تا صبح باز زدن دایره و رقص و ساتیری سمنک در جوش و ما کپچه زدیم مارها و خود کپچه می و صبح نماز فرزن را این ای بدعته به دین اسلام نسبت می که دین اسلام از این کارهای بده که تا صبح نکردن و تا صبح به گناه مسروح بودن و او را باز اسلام نسبت دادن دین اسلام اونموت براعت دارن مثل که گرگ از خون یوسف براعت داشت حتی گرگ بیچاره را در اونجا متهم ساخته بودن به خون حضرت یوسف علیه السلام بدعت شوله شری شعلی شیرین و شعلی ترخ در اسلام کدام اصل ندارن ای خاطر کسانی که واقعا در روز آشورا و یا در روز مولود پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروان حقیقی حضرت رسول خدا هستند، خدا و سنت رسول خدا آراسته بسازند سنت عملی سنت نظری سنت تقریری پیغمبر را خود تطبیق بکنن ازی خاطر چند ن نثار که شعلہ پخته میکنن و اون شعلہ را باز با از یک پیسدار با پیسدار دیگر انتقال میتن هیچ اجر و ثواب حاصل نمیکنن کییره نسبت به دین بتن شعلہ پخته کو نوش جانت بخو و بر ما هم روان کو اما نوشا به دین ارتباط نتی که ای ثواب دارا آ اگر شعلہ پخته میکنی و بر فقرا میکشی ای تنها مشخص به کدام روز خاص نیست اگر حسینی هستی من هم حسینی هستم مثل امام حسین شهامت داشته باشیم، دین مثل امام حسین در مقابل باطل قط علم بکنیم، دین چیره خود مثل چیره امام حسین بسازیم، دین پیروی از امام حسین بکنیم، واکن حسینی باشیم در ظاهر و در باطن. دعت شم در دادن بالای قبرها شم در دادن یکی از مناسق مسیحی هاست که متاسفانه در بعض از جای های اسلامی هم این انتقال شدن این و مسیحی ها غالبا در مقابل اکابر و, اکابر و جبابره خود پیش عکس های مرده های خود شم در میتن هر کسی به نوبت خود شم در میتن که شما ای را در سریال های, سریال های همیشه میبینین در دین مقدس اسلام این شم و شم در دادن نیست فکر کنین مبو و شما بین در سر مورده ایمه چل شمه بالی سر کلیم در بتین خود دوزخ شور کردین خدا انصاف دان بده از این خاطر ای کارها را انجام دادن است که من فکر میکنم از ادیان دیگه در دین مقدس اسلام انتقال کرده ما تا بال حدیث از پیغمبر نیافتیم که پیش قبر پیغمبر یا کدام صحابی مبارک کدام صحابی کدام شمی در داده باشه بدعت ترک دنیا به نام اسلام ایران خدا میگه که لا رهبانیت فی در اسلام رهبانیت نیست اگر ترک دنیا می کنی جهاد بکو، جهاد فی سبیل الله رهبانیت امت رسول الله صلی الله علیه و سلم اما ترک دنیا کردن و بوغه کردن و چلم کشیدن و نصور انداختن و به اینام روی خدا یک افترششتن در اسلام نیست در اسلام پنج بار روی مبارک توابید بشویی در اسلام باید روزهای جمعه حتما غسل سنت بکنی و هفته دو مرتبه سه مرتبه غسل کردن و پاک شستن یک کس گنده بوی میتا بوی گوسفند از جانش میره ا نیروی جانش مثل پشم گوسفند گشت و مویاش پल्टा پल्टा شده و میگه ما ترک دنیا کردیم برش گفتم تو ترک دین کردی. چون دین دین نظافت است و بین اضافتی در دین اسلام نیست از این خاطر یک تعداد از انسان‌های چتلخور مردارخور خودا نسبت به دین اسلام میتن و میگم ترک دنیا کردیم در اسلام ترک دنیا نیست هر کسی ترک دنیا کرد در حقیقت ترک دین کردن زیرا سه نفر جوان که قصهش بر شما معلوم است و پیش خانه پیغمبر آمدن یکیش گفت من همیشه نماز میخوانم، تا توبه سو و, و دیگهش گفت که من تمام روز روزه میگیرم، هیچ روز افطار نمی کنم. و دیگه اشک گفت که من ازدواج نمیکنم رسول اکرم صلی الله علیه و سلام عرض خواست خاص و گفت من از شما که از خدا زیاتر میترسیدم ازدواج هم کردیم شب خواب هم میکنم و نماز هم میخونم و روزه هم میگیرم روزه های فرضی و روزه های نفلی را و روزه دیگر افطار هم میکنم از این خاطر گفت بیرانبر گفت من رقی به سنتی فلیس منی کسی که از سنت ما دوری بکنه رغب فی سنتی و یکی رغبت خودش با واسطه حرف جر مانایش تهدید و تعین میشه رغبت فیه خوشم آمد و رغب عنه بد آمد از این خاطر من رغب عن سنتی کسی که دوری و بدی از سنت من میکنه فلیس سمنی از امت من است بدعت بردن عروس داماد و زیارت ها این بردن عروس داماد و زیارت ها هیچگاه نسی در دین مقدس اسلام نیست به ایسا و هیچ حدیث و هیچ روایت نامده که پیغمبر خدا یا کدام صحابی مبارک خانم خدا باد از نکاح برده باشن به زیارت عادت های مسیحی هاست که به خاطر نکاح کردن در کلیسا میره ما مسلمان ها نکای خدا یا در مسجد و یا در خانه خود میکنیم از این خاطر دامادی که نصف ایمان داشت و در شب که نکاه میکنه نصف ایمان مسلمان تکمیل میشه اما دامادهای های بی غیرتی که عروس خدا در مجلس با نامحرم ها او را عکاسی میکنند فلمبرداری برداری میکنند و او را بناحرم نامحرم ها م... نشان میتن با پیران های چسب و آستین هایی که از گاچ ساخته شده و یک فت طویل خوب که تمام جسمشان معلوم شده چهره آروس خوده سرش ایطالوی و پیرارش فرانسوی و پربی هندوستانی جور میکنه از این خاطر این مردم بهره از دین نداره پینجا فیصد ایمان و دیگه خدا در شب آروسی دوازده بجه شب در پیشانوش تا پی دیاسد میشه دوز گفته میشه که تو نداشتی امروز داشتی بعد مردم تقدیمش کردی از این خاطر ایدامات که تا و در معصیت خدا سپری کرده و این که تا و در مقابل نامهرما تصویر آیش گرفته شده اردوی از این مجرم به پیش شاهد شمشیر میرن و شاهد شمشیر میگه که دستم تهی سوار نگردنه که اردوی تانباد شمشیر خود از بین میبردم از قسم مسووم قسم فتوا دادن جاهلان و انتقال حکم شرعی به حکم قومی متاسفانه شما فامین که فتوا به نیابت از خدا گب زدن است فتوا دادن به نیابت از خدا گب زدن است بسیاری علما حق ندارند که فتوا بدن من خودم تا با حال صلاحیت فتوا را ندارم ایرادتان اعلان می‌کنم اگر کدام می میگم از عالم شنیدیم و در کتاب خواندیم صلاحیت فتوه صلاحیت کسی است که به درجه اجتهاد رسیده باشد چرا کسی که فتوه در یک مسله در حقیقت به نیابت و به نمایندگی از خدا گرفت میزنه از این خاطر از فتوه دادن بترسین و در افغانستان ما دکترای دروغی و فتوه, فتوه ده های دروغی دو چی زیاد داریم در این دو گرفت هر کسی که بگ مسیحت و هر کسی رو ببینی که برش مسئله دینی رو بگویی فورا از دل خود چیز میگه نشه که حلال رو حرام بسازی و حرام رو حلال بسازی و کسی که حلال حرام میگه و حرام حلال میگه کافر میشم از این خاطر از فتو حتی صحابه کرام اجتناب میکردم و زود نمیگفتن جواب نمیدانن امروز بسیاری کسا هستند که فتوه میتند و به ضد دین مقدس اسلام فتوه میتن. بعضی از کسا کمپیوتر حکم فتوه میتند که حرام است. خودش از کمپیوتر بخبر است و او وسیله را میگه که حلال است یا حرام. بعضی از تلویزیون میگن که تلویزیون حلال است یا حرام. تلویزیون خودش منعید یک گلاس است. در بین گلاس اگر شراب خوردی، کار حرام را کردی اگر آب نوشیدی بس ظرف نمیشه که حلال یا حرام شود حل و از او به اساس میشه. میشن چیکار درو میشن از این خاطر مطلقاً یک چیز را حرام یا حلال دانستن در وسایل این مشکل برای انسان ایجاد میکنه از این خاطر کسانی که در این قسمت ها فتوا میتن اشتباه میکنن مثلا یک کس اینترنت حرام است ولی وسایتی اینترنتی کلش قرآن سیف شده چطور رو حرام است یا میگه که شنیدن طیف حرام است در بین طیف کاختست طلاوت خاری سدهی سمشنویم حرام شد پس تو که از طیف منفی استفاده میکنی تو او حرام صافتی برای خود بگو که استفاده منفی از وسائل سبب میشه که انسان منحرف شود نه که هر چیز باید چی کنیم هر چیز برای خود حلال حرام و حرام حلال بسازیم رحیابی و مفتی ساختن سبب بسیاری از جنایت هاست بسیاری کسا برای گناه خود می سازن؟ بر گناه خود خود مفتی می سازن لعنت الله علی الراشی والمرتشی حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که لعنت خدا بر رشوت گیرنده و رشوت خورنده و لعنت ترد از رحمت خداست از رحمت خدا رشوت خور رشوت دهنده محروم است امروز بنامه ای که ضرورت عصر است بسیاری از کسا بر خود میگه که ما هدیه گرفتیم اه ما توفه گرفتیم نام رشوت پیدا و پنام ایمانه ما پیدا و پنا کردیم از این خاطر اینی مردم ها در شانشان عمی است که افت و به بعد کتابی و تکفرونه به بعد بعضی از آیات قرآن ایمان دارن و بعضی دیگهش کافر شدن قسم چارم قسم چارمه باش که مکمک خدا راز کنم که بیتی پایه می شخش شد قسم چهارم اختراع سیستم یا طریقه جدید برای عبادت است وقتی که عبادت ها تعیین شده، برای هر عبادت سیستم از او عبادت نیست این شده. سالو کما را ایتمونی و صلی پیغمبر صلوات الله علیه و میگه که وقت تو خواندی که و اقیم نماز بخواین، از این خاطر پیغمبر بر اصحاب کرام میگفت که نماز بخواین مثل که من ببینن. از این خاطر اصحاب کرام پیغمبر صلی الله علیه و تعقیب میکردن که چه قسم رکوع میکنن؟ چه قسم سجده میکنن؟ چه قسم دعا میکنن؟ قسم عبادت میکنن از این خاطر بعضی کسا هستن که در عبادت ها بعضی سیستم های جدیدی را تین کردن بعضی ها مبالغه میکنن در بعضی از عبادت ها مثلا در سیستم روزه گرفتن اینا افراد میکنن در سیستم نماز خواندن افراد میکنن چی مانم یعنی خود از پیغمبر کرده هم زیاد جلوه مثل مثلا 3 نفر صحابی جوانی که لخاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده بودند پیغمبر اصلا بهشون گفت که این قسم عبادت افراطی در دین نیست و هر کسی که مخالفت سنت مرا میکنه از امت من نیست فمن رقی عن سنتی فلیس منی حدیث 4, بخاری شریف از در کتاب و نکاح میتونید را پیدا بکنید بدعت دیگه بدعت در چی؟ در ولیمه نان نانست که داماد بدل خود در آروسی خود تحیه میکنه و بر مردم او رو میتن بعضی ها آروس خیلی بزور تحمیل میکنن سر داماد و برش میگه که 200 نفره باید بر ما در بگیری این در ولیمه شامل نیست آروس خیل حق ندارن که بالای داماد نفرای خود تحمیل بکنن. حتی یک وقت ما بیاد دارم که در وقت حجرت علامه در پاکستان جمع شدن و کارت که کار دخترخیل برشان دختر خیل برشان میامد از طرف دختر خیل نان خوردن میفتن این حرام و نارواست چرا میگفتن این غصب میکنه اگر چلو سیر برن میتی توی برات میتوم اگر نمیتید توی برات نمیتوم غصب شد اما ولیمه چی است ولیمه سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که یک داماد در وقتی که نکاه میکنه اگر توان داشت بدل خود گوسفند میکشت دو گوسفند میکشت شود در میکنه هر پخته میکنه مطابق توان خود و هر کسی که دلش شد خواست اما شکل تحمیلی از طرف عروس خیل در ولیمه داخل نمیشه و اگر کسی میگه داخل میشه و برش فتوه داره برویه که باز ما هم یاد بگیریم تعذیت مردگان که خواندن نماز جنازه و سپردن متوفا خواب میشه ایره سیستم جدیدی اختراع کردن که به عوض از اینکه که بر مرده میخواهی نفع برسانی چه قسم نفع رسانده میتونی؟ یک در جنازهش برو و جنازهش بخوا دو در وادی که دفن میشه برو اشتراک بکن در این صورت هم به خود فایده کردی هم برای متوفا اما بعد از ختم دفن خانی از رفتن این نیست این ظلم است این تجاوز است این جنایت است که به نام اسلام به کسش فوت کرد این وزی که غم مو سر مورده خود گریه بکنه مجبورت برای قرض بکنه و بیایی بر مردم نان تایار بکنه اسلام ایره پسیره؟ کدو همه اسلام ایره پسیره؟ اسلامی که ما دیدیم حقیقی خو ایره نمیگن اسلام بگه تعذیت چی مانه تعذیت؟ او غم غمشاریکی بکن برو تو برش نان پختک و بیار فاتیخانی منیس یک فرهنگ فعلا رواد شدن اما در اسلام روز دو روز سی گیری در اسلام نیست ما کدام حدیث را ندیدیم اگر کس دیده بر ما رهنمایی بکنه از این خاطر چیزی را که من ندیدیم سراحتا میگم منم فهم فاهم ندیدیم از این خاطر میگم بدعت است به روز دوم و روز سه همه مرده را فاتیه گیری را به نام اسلام ختم کردن زیادت کردن از در حکم اسلام و در اسلام نیست از این خاطر هر بدد کلی یک سنت از بین میبرند از این خاطر امروز وقتی کسی میبریم به جنازه میگه بان باز در فاتیهاش میرم از این خاطر جنازه متوفاق خانده نمیشه اونه به دعت سنت اشتراک در جنازه و جنازه خانی را از بین برد. سوام تغییر در سیستم عبادت ها خاطر رضایت مردم بسیاری کسا هستند، بعضی از عبادت ها را خاطر که مردم راضی بسازه در عبادت تغییر میرن خیرات حق فقرا و مسکینا هست پر کار جور کرده و برای به نام خیرات روان میکنه این سیستم همه جور کردن خاطر که دیگر ها را راضی ساختن او روز ببینین یک استاد بر من میگه میگه من پدر ما از کنر است میگه من پدر ما بردم در کنر و در کنر میگه کسای هستن که جهاد کردن خاطر ایلای کلمت الله کسایی هستم که به خاطر دین خدا خدا شهید ساختن شهید دادن امروز که میگم حکم خدا را تذکیه میگم ما برش میگم که من 80000 ریال دارم میخوام 80000 ریال صدقه جاریه شوم ایره بگیرم در یک مسجد برم چا بکنم مسجد ما چا نداره مسجد ما جای وضو نداره مسجد ما جای حوض و نداره مسجد ما مسجد زمستانی نداره مسجد ما فرش نداره مسجد ما لود اسپیکر نداره که به ما اینی این چیزا رو بگیرم یتیم خانه ما مکتب ما چاکی نداره می خوام براتون مکتب این چیز میگیرم یه مرد میگه مرا نمونند ایواجی ای دادن بر خان سایبا برشون گفتیم این که خانه می خوره که ثواب نداره و اگر فقیرارا هم بدیم که صدقه مقطعی شد یک روز صدقه شد خلاص شد من میخوام صدقه جاریه باشه که اگه در مسجد یک چاه جوبرو تا روزی که مردم از اون چاه استفاده میکنن در یک قريه یک نل کش بکنم تا وقتی که در اون قريه مردم از اون ازش او استفاده میکنن این ثوابش واسه دلم برسه کلش میگه رشته پیدا از آجی صاحب و از فلانی صاحب و از فلانی صد با القاب و با نامهای مختلف کلش میره مخالفت کردن نه اون که من میردم از بیت خدا مصرف کنم و گفتند نه ایره برو نان پخته کو، و روز دو و روز سیکو تا تاک ونا بخورن. خلاص مگه چی میکردیم در کشوره که دین نمیتونه در مقابل فرهنگ قرار بگیره در مقابل رواج بگیره میتونه که هم رواجی بگیری و هم دینه مشکل است، مشکل اجواد میکنه اختصار عبادت ها در یک عبادت ای به دیگه است در اسلام گفته که ایمان و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه ان ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الایمان بدون و 70 شعبتا ایمان هفتاد و چند شاخه داره تو وقتی که قرآن تون میری باید 70 چند مضمون بخوانی تو میگی نه والا من من یک مضمون گرفتیم. بامد هم یک مضمون صد آفرین میگیری تو پاسکامیات نمیشی بسیاری کسا در اسلام یک عبادت وقتی که گرفتن عبادات های دیگه رو فراموش میکنه برادر در روز قیامت 70 چند دروازه داره مقابل تو که باید 70 چند در تیر شوی بعضی کسا میگه که والا تمام روز که اگر من ذکر کردم درست است ذکر ذکر بهترین عبادت است علا به ذکر الله تطمئن القلوب با ذکر خدا قلب ها اتمین آن حاصل میکنن پس تو باید صد مرتبه میتونی دو صد مرتبه میتونی هزار مرتبه بگو لا اله الا الله اما فراموش نکن که تنها ذکر کافی نیست ایمان هفتاد و چند شاخه داره. در هر مزمونش پینجه پیجوان ها پینجه ها نمراه خود بگیری که کامیاب شوی یا ده یک مزمون سفر بگیره و در تو صحیب صد بافارین نمیتونی شادت هم برد بتانه ولی خدا پاندون بابی کس برد داده بتونه به روز آخرت هم تا در دروازه استاد نشی یک نفر است داروسی خود سیل اگر پیم میکنه. برای میکنم بر مردم داروسی خود ایواز برنج گوش توضیح میکنه ها و در طرف دیگه در اقاربش هست که نانشه و صبح خدا ندارن تو سیل اگر به خاطر نفست مصرف کردی و برای از اون فقیر و خدا باز میگه و فی اموالهم حق کل سائل و محروم مسلمان حقیقی کس است که در مال خود برای سوال کننده و برای محرومین کسایی که مسکین و محتاج هستن حق قائل شوند فیصدی بتن ماهانه این از عایدات ما بر فقره و مسکین ها کل میشه خاطر نفس خود مصرف کردی این باز مقدس اسلام نیست اختصار عبادت ها در یک عبادت بعض عبادت ها را گرفته باز اونمو آیت قرآن در شان از اون میکنه که افت و امنونه به بعد کتاب و تکفرونه به بعد به کتاب ایمان داری به نمه دیگه ایمان نداری نماز چند رکات نماز نفل میخوانی وقتی که بازبرد گفته شه که تو کتی اینی میاخیل سای وقتی که خیرستی شهادت دروغ به ضد ازی تکفرونه به بعد باز میبینی میفهمی که شهادت دروغ گناهی کبیره است باز اونجا به خاطر نفس خود این حکم خدا رو قبول نمی کنی و باز نام خدا مؤمن میمانی اونمون یودا بیکارا کردن که عفو گفت به خداوند برجا گفت که عفتؤمنون به بعض الكتاب و تکفرون به بعد جای که خوش توهمند واسه بس اونجا بسیار خوب خوب چون هج یک کمک ساتیری داره هر یک کمک نام داره هر یک که بسیار لکس است هج یک کمک استوفا و یفا داره با سا... دوزوب می توی اما وقتی که ببینی که یک فقیر از گشنگی میبرن برن واجی که زکات خدا نمی ته رو خدا قبول میکنه کنن واجیه که مثلا در شفق خانه برده و شفق خانه مسکین ریزه در طفل مسلمان از, از بیخونی و از بیدوایی میمارن و این حج نفلی ری حرکت میکنه. این از دین با خبر است مثلا بازار حج نفلی کردیم و بیست حج نفلی کردیم هر طفل که مرده دستش بایخن و دوست در روز قیامت حج حج در پشت خانه حالا فرزی که نوازش نفلی چی اوره داری؟ بی تو فرزی شبور تو دشاف خوری یک شب تیر کدای شاف خوری اطفال برو سال کو، با خدا من یک بابایی کدیده ما از خاطر پنجواره پیام را پیش خارجی پایش باج بایکر. پنجواره پی فیس من اگر و تو میری هجی نفلی میکنی؟ این میگه لببل خدای ما میگه لعنت ادامه با دین مطابق خواسته های خود نسازن. دین چیزی که دین از کابول کو. سامع و اطعنا. بنام بعضی کسها بعضی باورت ها را در در در در تیک ابادت دورم مشغول است که با خدا ماینمی کار کردم من رسیدم. با خدا مرخصی دم. کجا رسیدی؟ دی؟ آن دکویا مرخصی دی؟ با جماعت نمیروم ولی با خطر با جماعت نمیروم که ملاصه خدا من آن حلال خدا یا حرام. تو دکه قاضی شدی بر ملاصه و بر مولوی و بر رضی و بر رضیم تو قاضی شدی. چیز دیگه خود بیار د. شیطان بر جاهل شیطان جاهل رای میکنه. شیطان بر علم شیطان علم رای میکنه. تا قمرویش کنم ولی عالم چطوره سی بچه تو توازن کن خدا کنه یک تا تو 14 سال پیش هم از ما کرده به اثر پر نمازی نمازت رو بخون واسه جماعت نمیرم با خادرزی کو ملازم من چم حلال میخورم چم حرام میخورم اصل خب من خلاص شیطان شیطان ساختید نماز خدا عبادت خدا پیغمبر خدا صلی الله علیه و وسلم تا روزی که وفات میکرد در شانه های مردم سر شانه دو صحابی دو سخرمه ما تا عشق کشالکشور به بخ... عبادت خدا میرسه خیر پیغمبر خدا میرسید دیگه یه مره سیدین دو عثمان افتستم برید شما نماز بخوانیم. پیغمبر خدا نرسید یه جماعت و جمعت و همه او دو میکنیم که حالا من صاحب به کجا رسیدی؟ پیش شیطان رسیدی منجونش تغییر مفهوم عبادت به رواجها و انعنات بسیاری کساست نامش عبادت میمانه رواج گرفته به نام عبادت مثلا مهر در اسلام یک چیز مشروع هست مهر که باید ما مهر بدیم ولی مشکل به چیست این مردم ایوازی که مهر بتن مهر چیست مهر بونست که داماد برای عروس در وقت نگاه تاین میکنن وال مهر رو الان ما یا برای ضایت جانبه این میشینن برای مجلس برشماید من برای خانم خود اینقدر مهر میتونم چه عاجل آجل میتونم چه قشه معجل و معجل یه حق دختر است اینال مردم مهره نامشن مفهوم مهره میگیره لیکن تویانه را آردن در جوی مهر برادر تویانه که دختر فروش ها میگیرن اینه اسلام نیست روزی که میره باز خطه که نشته میکن اگه سی لگرفه میتی ویلکم اگه سی لگرفه برای من میتی برفانايت به خدا این مهر شرعی نمیست است که کسری مهر بگویا این مهر نیست این دختر, دختر فروشی دختر فروشی تویانه در اسلام مهر هست و حق دختر است تویانه در اسلام وجود نداره و پول دو تویانه حرام است چرا حرام است به خاطر ازی که پیغم بسیم حدیث شریف میگه که صلاح زدتون انا خست مهم سه کس که من در روز قیامت دشمن نشانستم یکی کسی که امسان آزاد رو بفروشم بسی دختر از یا آزاد است. بیره میفروشم اما کابل سیل اگر بکرم اما اگر مهر است محر در وقت نکاح یا تاین میشه و اگر تعیین نشد علمای فقه همه که مهر مثل باز واجب میشن و یک کنم دختر است که برش جادم میشن ایناله بدعت تویانه و باید بسیاری کسا همه یک استاد آنه مهر اسلام نیست باید مهر است تویانه نیست تویانه دیگر چیز است و مهر دیگر چیز است باید بشنست مسلم خودم تویان بدعت نکای نیمه به اینی غمک کورتا کنیم در خوری ها یک انسان های استفاده جو. حرام خور میخوان که حرامه بر خود حلال جلوه بده برادر در اسلام خواستگاری است بود از خواستگاری چیز که میره بر اون جانب مقابل میگه که ما سعی می کنیم که ما قولامت بسازم یعنی دختره که می تا بر بچه‌م بته درست که دختر است که پدرش بره برش بگوید که دختر شد. به اینجا اینجا جوان است. جوان دختر رو ببینه، دختر بچه را ببینه. نه اوتو شوک. نه ما سوارو سبرت نشان نمیتیم تا نکا که نکاه نشه یا نبیدی که دسته که دختر خواهده است ببرش باغ بالا. عرضواج حالا فیلم دو قسم است. اما دین برعکس عبدوی عزیز است. دین میگه که عروس دامات رو ببینه داماد عروس رو ببینه در صورت که با هم موافقه کردن اینمی دختر پرسان میشه و پسرم پرسان میشه وقتی که اونا رضایت تک کردن اگر یک پدر میخواه مطابق سنت و پیغمت هم زندگی کنه مطابق سنت و رواج خود میکنه دلش اینجاست اینجاست که آل نکای نیمه چی شده رواج شده دوادش شنیخوری در اسلام شنیخوری شنیخوری نیست پدر چله اولش کردن عادت اون دواست شما دسیهالا سایه این نوندوی کار میکنن مرد مسلمان چله الله براش حرام است ریشیدن تلا برای مرد مسلمان نارواست آریش مو با الله برای بر مرد حرام است خب اینا نشنیخوری در اسلام نیست اول شنیخوری رخصت جور کردن چله اولش هم کردن الی مردکت چه قسم را برای خود جور بکنه که 15 روز اول ماه و 15 روزم آخر ماه خانی خسار بره؟ ها؟ برای خود نکای نیمه را جور کردن. صاحب ایجاب قبول کنین. ها جورتم ایجاب قبول چی؟ خیروار کنین تو نفر شوهک که برای پرسان بکنه به نکای شبستم خلاص با داروسی گه نکا نکرین دگه خارمیش شد. نه نه نه نیسای بوتو نکرین. و نکای پولامشان. خیلی چی؟ نکای نیمه بکن کتی که گفت بزنم کتی خسر دخت... پدر دختر گفت بزنم پدر دختر رو برای دی بچه نکاه کنم او را در در اسلام از برای خدا نیست در اسلام اونا علمه آشیشتن اونا مولوی سای باشیشتن اونا کسیت ما برای مولوی سای با... میره از برای خدا برای مردم با مانین. بازی نمیمر بخواف به نام چخل بازی و. با. چی میگن؟ چغال بازی میگن به نام قنغال بازی و چغال بازی باز میره خانی از دختر و دانه کایسری شریش نیست خلوتش برام از او حرام است هر لحظه کی که او زو میجینت دسته حرام است اینی حرامه به نام نکای نیمه بر خود حلال ساختن این آروای مطلق است هیچ اسلام این نکایی که داشین نیکوری باشه هیچ صحابی هیچ دوست پیغمبر و هیچ کسی این نکرده اسباب انتشار بداتا را ان سبحانك اللهم و بحمدك أن لا إله إلا الله و استغفرك واتوبه.